ای هر دشت و دمن صدها سلامی بر تو باد ای منبع با نور حدا سلامی بر تو باد جان ما بادا خدایه نام ختم المرسلی سوی ایشان می روی و جان خود قربان کنی شيرين سخن محمد چاي حرام محمد صلي على محمد وعلى ال احمد صلي على محمد وعلى ال احمد قل هو يتر دو عالم مظهر دلدار از ما تو نور او جلالت جلوه ی اندیشگرید بیت ای ختم الرسل ما نان زندگی زندگی, زندگی با نام و نام یادت در و عالم بندگی شیرین سخن محمد سایه حرم محمد صلی علی محمد, صلی علی محمد صل على محمد وعلى آل أحمد